بسم الله الرحمن الرحیم و الله على سيدنا سیدنا محمد والد تاهرین اللهم اینی اجد و المطالب علیکه مشرعه و مناهل الرجاع علیکه مترعه و لمن ام ملک مباهه و عباب للصارخين علیکه مفتوحه با عرض سلام و احترام خدمت شما سروران گرامی، امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار خانواده محترمتون سپری کنید همچنین از همه شما عزیزان تو این ماه مبارک التماس دعا داریم امیدوارم که تاعت و قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه خب اگر خاطر مبارکتون باشه ما مباحث درس تفسیر رو که داشتیم پی میگرفتیم رسیدیم سراغ صفحه 376 هم که در واقع ما اینجا با بحث خلود سر کار داریم بحث جاودانگی عذاب مرادمون هست طبیعتا در مورد خلود در بهشت قیلغال نیست آنچه که محل بحث بوده است پیرامون خلود در جهنم هست که خدمت شما عرشبت وقتی شما مشاهده می کنید این بحث یک بحث چالشی هست به بیشترین نزاع هم که شما مشاهده می کنید در حقیقت با معتزل بوده اینجا این وسط چون شما نگاه می کنید بزرگان معتزلی اینجا هم در واقع مطالبی رو بیان داشتند و اینجا شیعه و اشاعره در صدد پاسخ به اونها برآمدند. ببینید ما یه بحثی رو هم داریم که من توی اگر بزرگوارانی هم که با من فقه حدیث را دارند من بحث همون ایمان کفر رو هم گفتم گفتم یکی از مباحثی که وجود دارد پیرامون بحث کفره بحث شخصی که مرتکب گناه کبیره می شود تا در واقع سر سرنوشت اون چیست تکلیفش چیست که اینجا شما وقتی مشاهده می کنید اینه که یه میان بحث فسق را مطرح می کنن. خوارج خب در واقع کسی که مرتکب گناه کبیره شده را بهش کافر میگن اونا دیگه معادل کفر میدونن و یک نتیجه گیری بسیار سخت میکنن که در واقع عبارت است از خلود در جهنم از آنور معتزله میگن آقا کسی که مرتکب گناه کبیره میشود نه ما اون را مؤمن مینامیم و نه کافر یه حد وسطی برای اونها هست که اینجا بحث فسق رو لحاظ میکنن اگر توبه کنه و در واقع بمیره خب طبیعتا چه نجات پیدا کرده دیگه در جایه مؤمنان خواهد بود حالا اگر توبه نکرد و مرد این شخص در آتش جهنم در واقع جاودانه خواهد ماند ببینید این بحثی که وجود داره اینها این بخش بخشی که اینها میگن که ما با این بخش کار داریم که اینجا درگیری ها هم اینجا هست. از اونورم خدمت شما عرض بحث شفاعت را که ما مطرح می کنیم که آقا یکی از وظایفی که شخص شفی بر عهده دارد می آید شفاعت می کند برای افرادی که در واقع گناه کردن دیگه. حالا افرادی که طبیعتا توبه کردن و استحقاق دارن اینجا اشاع در واقع معتزله نظرشون اینه که آقا شفاعت را ما برای ارتقای مرتبه قبول داریم نه بابت در واقع شفاعت برای عفو گناهان بخشش گناهان یعنی شما می‌بینید شفاعت را هم اون بعد خدمت شما عرض شود که عفو و بخشش گناهان رو نمیپذیرن و این وسط پس می‌بینید که بیشترین بحث بیشترین درگیری رو که چون ما بحث خوارج رو نمی‌گیم چون دیگه خوارج طبیعتاً اینها صاحب اثر نبودن و تو صده های بعد این افکار از بین رفت بله ما الان داریم اباضیه و اینها رو داریم الان توی خدمت شما ارشیوات کشور عمان و اینها داریم از اینها مون تا اینا خیلی محدود هستن صاحب قلم هم نیستن آن چیزی که ما در طول تاریخ داشتهیم بحث معتزله بوده که این وسط بیشترین درگیری طرف توافی اسلامی هم در واقع با همین گروه خوارج معتظله بوده ببیجه با معتظله. که آقا ما باید دقت کنیم برای ایمان درجات و مراتبی وجود داره ما نمی توانیم یک سره شخصی که مرتکب گناه کبیره شده است را اون را از جرگی معمنان خارج کنیم. ما بین این اشخاص میتونیم بگیم معمنه چیه؟ فاسق. نمیتونیم برای اینها بگیم آقا اینها خالد در جهنم هستن حالا این بحثی که وجود داره شما وقتی مشاهده می‌کنید، شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات بحثی داره ایشون نظرشون اینه که جاودانگی خلود در آتش در واقع از آن کافران هست کفار در واقع خالد در جهنم خواهند بود وگرنه افرادی که در واقع مؤمن هستن شناخت داشتن به خداوند و خدمت شما هر چود فرائز رو به جا بردن حالا نه یه گناهانی هم مرتکب شدن ما این آدم رو نمیگیم این ها خالد در جهنم هستن بازم من اگر یادتون باشه افرادی که بحث فقال داشتیم گفتیم تو مرجعه در واقع ایمان رو از سنخ چی میدونستن از سنخ اقرار زبانی میدونستن دیگه اون بحث ها شما بعد هم دقت کنید حالت مرجره رو بعد دو تایفه شو دقت کنیم یه عده که راجیه هستن و یه عده مرجره هستن دیگه حالا ما اون مرجعه اصلی منظورمون هستا مرجعه و اصحاب حدیث یعنی افرادی که پیرو احمد بن حنبل بودن که ما میگیم مفوضه اهل حدیثی که بهشون اینها هم با امامیه هم نظر هستن همون بحثی که ما میگیم آقا اینها رو ما در جریه کافران نمیدونیم در حالی که معتظل گفتیم مطرح میکنن که مسلمانی که خدمت شما عرض شود این مسلمان مرتکب گناه کبیره بشود و بدون توبه از دنیا برود این شخص در واقع جاودان و خالد در آتش دوزخ خواهد بود که این دیگه سختگیری که اینها دارن که اینجا ما باید اینها رو بهشون پاسخ بدیم آن چیزی که دیدگاه در واقع قاطبه علمای شیعه هست اینه که آقا ما یه بحثی رو مطرح میکنیم. میگیم آقا اگر کسی مؤمن باشد و اقرار به گناهاش کرده باشه. یا اصلا بحثی بوده مثلا ای بسا شخصی هم توبه کرده حالا آخر عمرم توبه نکرده. این شکلی میگیم دیگه این از دنیا رفته. خب این آدمه طبیعتا وقتی میرود در واقع در آتش دوزخ قرار می گیرد گناهان اون دیگه پاک میشه دیگه بعد رحصه بهشت میشه و اونجا تو بهشت جاودان خواهد موند اما چیزی که معتظله میگن میگن می, گن می گن آقا اگر کسی وارد آتش شد دیگه براش خروجی نیست ببینید این سخت گیری اینجا هست دیگه یعنی یا باید شخص بره بهشت اگر رفت جهنم دیگه وارد بهشت نخواهد شد برای همینی که شما مشاهده میکنید تفتازانی تو شرح المقاصد میگه میگه شکی نیست که اهل بهشت اون مخلد هستند همچنان شکی نیست که کافران در دوزخ چاو دانه خواهند بود حالا سخن درباره مرتکب کبیره است حالا اگر شخص مؤمن به حق تعالی بود و به شریعت اسلام در واقع باور داشت و بدون توبه از دنیا رفت این بحث که وجود داره خب ببینید ایشون در واقع از اندشمندان اشعری هست دیگه آقا شما باید دقت کنید که اختیار در واقع اف و بخشش دست خداونده ما نمیتونیم برای خداوند تعیین تکلیف کنیم که اگر مسلمانی که کافر نیستا مسلمانی که مرتکب گناه کبیره شده بگیم این دیگه وارد از جهنم خارج نمیشود این ما انگار داریم برای خداون محدودیت میگذاریم دست خدا را میبندیم متاسفانه این دیدگاه دیدگاه خطایی هست که ما بخوایم بگیم که در واقع خداون نمیبخشه اینجا است که اگر خدا بخواد کیفر میده اگرم نخواد چیه؟ طبیعتاً اف میکنه به خودم در واقع اف میکنه حالا از اونورم مررج که ما بهتون گفتیم از نظر مررج اینه که معمون گناهکار هیچگاه اذاب نمی بینه باز از اونور بوم افتادن مرجر هم شما ببینید دیگه چون اینا بحث بس, بس رو رو عمل نبرند دیگه ایمان را سنخ اقرار دونست دیگه. اقرار زبانی یعنی حالا شخص اقرار زبانی کند که به خداوند باور دارد و شریعت اسلام را پذیرفته و در واقع شهادتترین رمداد و این موارد حالا ولو خطاییم کرد این آدم چون، در حقیقت چون باور اقرار زبانی کرده است وارد جهنم نمیشه عذاب نمیبینه خب اینم خطا است باز نظر شما جناب قاضی از و دین ایجی رو که مشاهده میکنید ایشون میگه, میگه مرتکبان گناهان کبیره اگر تو عمر خودشون کار نیکی هم انجام داده, داده باشن هرگه سواتش جاودان نمیمونن بس ایشون هم داره همون شکلی که ما بهتون گفتیم ها. یعنی میگه شخصی که کافر نیست دیگه مسلمان هست این مرتکب کبائری شده است. حالا این اگر رفت جهنم در واقع خالد و جاودان دران نخواهد ماند این خارج میشه و میره وارد بهشت میشه ببینید یه بحثی که وجود داره ما یه نکتا با اینجا مطرح کنیم اینه که اگر انسان مسلمان و مؤمنی در واقع مؤمن فاسقی وارد جهن در واقع تکلیف شد دیگه و مشخص شد این آدم جوری هست که باید بره توی جهنم عذاب ببینه درسته یه سری اعمال اعمالی در واقع مرتکب شده که باید عذاب ببیند از اون اعمال خیلی هم دارد که طبیعتا باید بره بهشت حالا سال اینه که اول باید بره بهشت یا جهنم که این معلومه دیگه طبقان چیزی که اندیشمندان ما میگن بعد شخص به اول وارد جهنم شود وقتی که عذاب شد و در واقع پاک شد از این گناهان بعد وارد بهشت میشه اون موقع محکوم به خلود و جاودانگی خواهد شد که این قول قول در واقع اشاعره و امامیه هست گفتم که معتزله گفتن دیگه کسی وارد جهنم شد دیگه چیه؟ دیگه خارج نمیشه از اون دیگه یعنی اونا میگن آقا یا باید شخص بره بهشت یا باید بره جهنم دیگه دیگه اینجوری این نیست که شما بگید از جهنم خارج شه بره وارده بهشت بشود خب حالا ما جدا از این مباعث کلامی که این وسط وجود دارد که مباحث باز دامن دارتر هستا ببینید مثلا دقت کنیم فلاسفه همیشون حالا بیان نکرده حالا میبینیم شما این میبین فلاسفه و عرفا خیلی واسه خلود را قبول ندارن در کل میگن چون سرش فطرت انسان بر خداپرستیه اینا هست به یه جورایی نشا هست حتی شخص اگر کافرم باشه یه جوری برمیگردم میره بهشت دیگه اونا از اون بوم افتادن هست دیگه یعنی گاییدمون نمیخوام دیگه شب، شبیه در واقع اونها صحبت کنیم ببینید پس ما بخوایم یه بار دیگه بگیم معتزله نظرشون که هر فردی از امت اسلامی که مرتکب کبیره بشه و به اصطلاح ما میگیم فاسق شده اونها میگن بحثی که مطرح میکنن نه کافر نه مومن جایگاهش در واقع میگن منزلتون بین المنزلتین هست دیگه که حالا اینا شخص اگر توبه کرد خب تکلیف چیه میرود بهش اگر توبه نکرد وارد جهنم میشود دیگه آنجا وقتی وارد جهنم شد در واقع اون جاودان خواهد بود خب اینا بهش دقیق کنیم خبارج هم که ما بهتون گفتیم خبارج نکتهی که گفتن اینه که شخص به محضی که مسلمان باشه، مؤمن باشد، گناه کند دیگه در جرگه کافران خواهد بود خب ما عدله اشاعر هم گفتیم مثل شیعه هست و با شیعه و اشاعره هم نظر هستن با خوارج معتظله مخالف هستن و نظر اونها هستن که خو... نظرشون اینه که خلود در آتش به کافران در واقع اختصاص داره. بعد یه دلایل کلامی وجود داره مثل استحقاق سواب به خاطر ایمان قپ یکسانی ثانی مومن گناهکار و با مشرک با... به ویژه بعد تعویل خلود به مکس طولانی مواردی که میگن یا به یه سری از آیات استناد میکنن که ما این موارد رو بعض از موارد رویشون بیان کرده ببینید این وسعت عرفای ما مثلا مثلا ابن عربی شما وقتی مشاهده می‌کنید این نظر خاصی داره ایشون قائل به عدم خلود جهنمیان هست البته نظرش اینه که عذاب آتش به نعمت و آرامش و خوشی برای اهل آتش مبدل میشه و آقابت دوزخیان هم خیر و سعادته به همین خاطر مثلا نظر اونها به ظهور و تحقق اسماء حق تعالی از جمله رحمان و رحیم رحیم هست که به خلود میپردازن میان تفسیر میکنن اسما و ظهور اونها را دیگه شما وقتی برید توی کتاب فوتوات مکیه ایشون میگه که اهل آتش پس از این که به قدر اعمالشان عذاب چشیدن در جهنم مشمول فضل و رحمت میشن به گونه که دیگر آتش را حس نمی کنن. این بحث از صفات حقتاله و رحمانیت و رحیم بودن و ارحم و راهیمین و اینها رو شما میبینید مطرح میکنن بیشو میگه عاقبت اهل آتش در واقع چی از نعیم هست که اینا شما حالا عرفا مطالب رو بیان داشتن و ملا صدرا هم نظرش اینه که همون واسه که بهتون گفتم تهش شما میید افراد به همون فطرته برمیگردن بحثی که مطرح میکنن اما آل عذاب رو قبول دارن ها میگن اون به اون فطرته برمیگردن و جاودانه نخواهد بود خب این هم مطالب کلامی که اینجا بیان شد و حالا ما وارد اصل بحث می شویم قائلان به عدم خلوت شما وقتی نگاه میکنید کنید مطالبی رو مطرح شده افرادی که نظرش این هست که کسی جاودان در آتش نمی ماند به دلایل نقلی که ما داریم اینجا بیان کرده استشون یکی از این آیات آیه هفتم سوره زلزال است. فمن یع من یعمن مثقال زررتن خیرن یره که خدمت شما هر شود که استدلالشون هم به این شکل هست که در واقع حالا مطرح میکنن میگن مؤمن مرتکب کبیره محکوم به سباب و اقاب هست حالا توضیح میدن دیگه ایشون میگه ما تو تحقق بخشیدن به این دو در واقع سه تا احتمال داریم دیگه همون بسی که بهتون گفتم اول شخص همون بسی که بین شخص بر اول بهشت یا جهنم خب طبیعتا میره جهنم دیگه بعد میره بهشت اینه که ما بینیم شخص اول پاداش ببینه بعد کیفر این برخلاف اجماع هست اینه که هر دوتا با هم انجام بشه خب طبیعتا این ممکن نیست آن چیزی که میمونه بعد از ورود به جهنم به بهشت برمیگردن مثل شما ارز شود که ایشون نکتهی که مطرح میکنه در مورد این که آقا عدله قائلان به عدم خلود بر حساس آیه ذکر شده آقا اینها نکتهی رو میگن میگن که هر که عمل خیر رو انجام بده نتیجه اون رو خواهد دید دیگه نتیجهش رو میبینم خب پس چون نتیجهش رو میبیند این دیگه شخص نباید وارده چی بشود؟ نتیجهش اینه که نباید جوافدانه در آتش بمونند آقا شما فرض بگیرید یه شخصی کار خیر انجام داده باشه ولو خدمت شما عرض شود چیه؟ ولو آدمه در واقع از محدوده ایمان هم خارج شده باشه صرفا چون کار خیر انجام داده باشه فمن یه امن مثقال ذرت خیرن یرهو هست دیگه نکته اینجا مطرح می شود ببینید ما بحثی که داریم این آیه را ما برای عدم خلود نمیتونیم به کار ببریم. این آیه کارایی نداره. ببینید شما فرض بگیرید شخصی مرتکب کبیره شده باشد. خب مثلا خدای ناکرده خدای ناکرده ما داریم انفاق می‌کنیم. انفاقمون چی هست؟ ریاکاریه. میریم یه مرکز خیریه ی مسجدی در واقع بنا می‌کنیم و این فقط بر این که اسم ما باشد ریاکارانه این کار رو میکنیم با تظاهر و ریاکاری خب ما یه چیزی داریم یه مقوله دیگه داریم به اسم حبت درسته احبات اعمال دیگه وقتی حبت بشود دیگه چیزی نمیمونده نمیماند ببینید در صورت حبت عمل صالح دیگه اصلا خیر وجود نداره تا نتیجه مترتب بوم بشه درسته شما اگر میگید فمن یه عمل و دلیل بر عدم خلود و ورود در بهشت است ما میگیم آقا شخصی که در واقع کارهایی را انجام داده کارهای ناپسندی را انجام داده این اعمال خیرش حذف شده است خیری وجود نداره تو نتیجه رو را ببینه عین تعبیرشون اینه توی صفحه 370 نهم میفرماد که خلاصه آیه خلاصه آیه یک قانون کلی است و آن این که هر کس عمل خیری انجام داد نتیجه آن را خواهد دید ولی دیدن نتیجه خیر متفرع بر وجود خیر است اگر آیات و روایاتی حکم برخلود کنند کشف خواهیم کرد که این خیر به آتش به آتش معصیت نابود شده و یا از اول خیری در کار نبوده تا مستوجب پاداش شود. ببینید همین نکته که من بهتون گفتم وقتی دیگه خیر نباشد دیگه شما نمیتونید براش خدمت شما حرض شد که بگید موجب نجات میشود مستوجب پاداش میشه اصلا اون از بین رفته و اصلا دیگه پس اینجا کارایی نداره بخ... ما میتونیم استناد کنیم این آیه رو نمیتونیم استناد کنیم ببینید این آیه به تعبیر آیت الله سبحانی این آیه در واقع داره یک زمینه رو بیان میکنه زمینه مساعد رو... رو داره بیان میکنه ببینید ما بین دلیل با زمینه باید تفاوت قائل بشیم شما نمیتونید آ... آیه رو دلیل بگیرید. بله. ای بسا. ای بسا من یه زمانی کار خیری انجام داده باشم ولو کم خب این که در واقع بخوام مثال براتون بزنم از اون کارهای خیر دیگه انجام داده باشم خدای نکرده توی اونها تظاهر و ریا و اینها بوده هبته اعمال شده باشه اون کار خیر کم من موجب شده که در واقع چون با اخلاص بوده و چم چی بوده یک آثاری داشته به فرض بگیره دل یک یتیمی رو ما به دست وردیم این همینجور این شخص همیشه دعا کرده دعا کرده برای ما این خیلی بزرگ شده این کارا خیلی بزرگ شده ای بسا خداون بابت این اف و خدا هست دیگه خدا بابت این در واقع یک ترحومی در حق ما کند یعنی شما بینید این بس زمینم پیش می آید بس اصل و قاعده هست بس دلیل نیست من نمی تونم این که بگیم کس صرفاً یه ذره کار خیر انجام داد نتیجهش رو میگیره پس نتیجهش میشه چی؟ چون به ثواب میخواه برسه در جاودان در چیز نمیمونه در عذاب جهنم نمیموند آتش جهنم نمیموند ببخشید شما بعض از افرادم دارید این افراد آدم هایی بودن که الان جاودان در بهشت هستن این افراد شما وقتی مشاهده میکنید کارهای خیلی ناشایستی کردن حالا ما بگیم بابتون کارهای, ناشایست... کارهای شایسته که... کمی که انجام دادن اینها میرن بهشت؟ نه شما بس زمینه را با دلیل نباید خلط کنید پس این آیه اینجا کارایی ندارد دومین آیه که مطرح میشود آیه ششم سوره مبارکه رعت هست که میفرماید و این ربکه رب لزو مغفرت لناسه علا دلمه هم و این ربکه رب لشدیدالعقاب تو ببینید ما اینجا یه بحث زمقفره بودن نطرح میکنیم زمقفره بودن رب رو مطرح میکنیم یه جای دیگه هم شدیدالعقاب بودن رب مطرح میشود که در واقع این میگن بال خوف و رجا لزمقفره میشود رجا در واقع از اون برم لشدیدالعقاب هم میشود چی؟ میشود خوف خب اینجا در مورد گروه گناهکار رو ما چه کنیم؟ ببینید اینجا استناد که میکنن این آیه هم یک مورد است دیگه یک مورد دیگه گرفتن که شما چون مطرح می شود این لزو مغفرت این لناس، اینه که در واقع مغفرت خداوند داره مغفرت و آمرزش نسبت به مردم هست در حالی که اونها چی هست؟ علا ظلمه هم اونا در واقع به خودشون ظلم کردن خب پس نتیجه می گیریم که در نهایت چه می شود؟ در نهایت این می شود که افراد در خدمت شما شود که مرتکب گناهان کبیره در آتش جهنم خالد و جاودان نخواهد بود. خب اینو باید مواردی که اینها مطرح می خب مرتکب کبیره رو ما فقط با هر جا میرسیم بگیم مرتکب کبیره از مؤمنان یا مرتکب کبیره از کافران همیشه این مخاطب اون رو با توجه کنیم بهش حالا به این تبیین آیه میپردازیم